بخش هم آفتاب هنوز پهن بود ولی نه آنطور که فکر کنید لاجون بود یک سنگ متوسط برداشتم و منتظر شدم که به شیشه اولین قطار مسافری که رد می شود اینکه می گویم سنگ متوسط به این خاطر نیست که اوقاتم زیاد تلخ نبود یا اینکه زورم به سنگ گندهتر از آن نمی رسید در واقع به این دلیل است که این جوش سنگ ها از نظر عمل کرد نتیجه بهتری به بار میآورند سنگ های درشت برای فاصله های خیلی نزدیک خوبند ولی اگر خواسته باشید از چند متر آن طرفتر هدف بگیرید سنگ متوسط رود ندارد. امروز روز دیگر بیشتر مردم میدانند که حمله به قطارهای مسافری کار بشر نیست ولی چه می کرد؟ قطارهای باری که به کفر ابلیس نمیارزند اگر شیشه لوکومویوش را زدید که زدید وگرنه باقیش مشتی آهن است که سنگ درش کارگر نمیافتند هرچه بساب کردم قطار پیداش نشد چه مسافری چه این اینقدر هم پیداش نشد که بالاخره دلم خود به خود کمی خونک شد به علاوه کمی گری هم کرده بودم عوضش سنگ را به طرف نزدیکترین خانه‌ای که آن طرف ریل بود ول دادم کار جالبی نبود اما دست کم بهترین کاری بود که در آن لحظه از پسش آمدم. شاید تا حالا دستتان آمده باشد که من برای هر چیزی زیاد قصه نمی‌خورم ولی آن روز سر و شکلم هیچ به ایزاد نمیرفت همینطور که برمیگشتم با خودم گفتم اگر از همان اول تصمیم می گرفتم که دو سه ساعت دیرتر به حساب بروم سرنوشتم چقدر عوض می میشد کمی چرخیدم تا هوا خود به خود تاریک شد برای آن سر و وضع گرفته من هیچ چیز بهتر از تاریکی عمل نمی کرد. یا علی رو گفتم برای بار سوم در یک روز وارد کوچه اشان شدم. حالم دیگر داشت از آنجا به هم می خورد مزداي قاسم دیگر جلوی در نبود ولی حال من همچنان داشت به هم می خورد. جلو در که رسیدم بدون این که فکر کنم دارم چه غلطی میکنم دستم را روی زنگ گذاشتم و دبسند. یا شانسو یا شلقم. یک زنگ بلند کشدار زدم. درست مثل اینها که قصد مزاحمت دارند یا میخواهند خبر بدی بدهند؟ خواهر حسام از توی حیاط داد زد؟ کیه؟ این سوالی بود که خانوادگی از صبح هزار بار پرسیده بودند دوباره داد زد؟ کیه؟ کی بود؟ محال ممکن بود که آقا نادر آن ساعت خانه باشد ولی به مرگ مادرم اگر دیو دو سر هم از آن تو تنوره میکشید یک قدم پاپس نمیکشیدم صدام را توی سرم انداختم و گفتم منم اباسم مثل یک مرد جنگی خواهرش گفت مامان؟ مامان میگه عباسه مثل اینکه اینبار این بار نوبت مامانش بود بله بفرمایید. سلام خاله عباسم. حسام هستش؟ بله. حال شما خوبه؟ خوبه. مرسی. میشه بگین بیاد دم در؟ بله. نیستش عباس آقا. توجه میکنین که کلم بله از دهنش نمیافتاد گفتم کجاست خاله؟ بله. نمیدونم راستیاتش عباس آقا. امید نداشتم با این آدم به نتیجه برسم. تکه کلام بدی برای خودش انتخاب کرده. و من با آن لباس چرک و چپول اعصاب سر و کله زدن باش را نداشتم. تشکر کردم و خسته و آویزان روی پله سنگی جلوی درشان چنبک زدم. حتما شما منظورم را از چنبک میفهمید. داشتم همانجا برای خودم میشنگیدم که خواهر کچیکش آمد پشت در ولی در را باز نکرد. حسام دو جین خواهر دارد. این یکی که میگویم کوچیک کوچیک است. گفت سلام سلام کوچولو. من کوچولو که نیستم. هب سالمه. آتیش به هفت میگفت حب تازه اگر خیلی داشت پنج سال. کمی مکس کرد و گفت خوبم. با حسام کار داری؟ من اصلا حالش را نپرسیده بودم، ولی چه اهمیتی داشت. فوری گفتم آره خوشگل خانم یه دقیقه دروا میکنی؟ دروا کن. بدون ما گفت نچ. چرا؟ یه دقیقه وا کن کارت دارم. دروا نم این قصه شنگول و منگولی یک شاهی اعتماد برای بچه ها باقی نگذاشته است. بی خیال در شدم پرسیدم. میدونی حسام کجاست؟ آره، کجاست؟ بی هوا داد کشید؟ صیه؟ ص عباس دادش حسام کار داره. صمایه خواهر یکی مانده به آخر حسام است. این یکی راستی راستی هفت سال است صما هم کمی بعد آمد پشته در. سلام، عباسی؟ آریکلا کدومه عباس حالا هم که مثل مرد وایستده بودم و آشنایی میدادم کسی نبود که من را به جا بیاورد گفتم عباس نوی سید ساندویچی همون که سوسیس کالباس اینا داره گوش شیطان کرد مثل این که این یکی چیزهایی می میشد آفرین که یه بار با حسام اومدی فلافل خریدید گل سرت مغازه ما جاموند یک بار با حسام آمد فلافل خریدم گل سرش مغازه ما جاماند در رو باز کرد و گفت آهان گریشه با بزرگ سفیده چشاش سبزه سبز مگه نیست چرا چرا آفرین حسام کجاست؟ نیستش حالا شاید حساب دستتان آمده باشد که چرا هیچ مشاور خانواده ای ازدواج های فامیلی را تایید کند گفتم حسهه داداش حسام کجاست اومگه داداش حسام کجاست؟ نیست رفته ید و کلوپی رو پس بده. تمام شد. یک روب بود که لنگ هم یک جمله بودم. فیدو کرूपी رو بلد بودم. خواستم بروم پیش اما به ریسکش نمیرسید. حسام انگار که کسی تغییبش میکنهد هر سری از یک راهی میرفت. ممکن بود نتوانم ردش را بزنم. از آن گذشته برای ظاهر شدن در انظار عمومی سراو وضع درستی هم نداشتم. برای همین دوباره همانجا روی پله سنگی نشستم. آقای خودم، نوکر خودم. 10 نشستم. تا سر و کله‌ی آقا پیدا شد. حالا هم که آمد متوجه منو به این گندگی نشده بود و داشت کلید میانداخت که در رو باز کند. صداش زدم؟ "اسا! اسا! اوی! چون فاصله کم بود دیگر سود نزدم برگشت. "ا، سرم تویی؟ از کجایی تو؟" دوباره بغزم گرفت. از سرم رد شد یک لگل کاری وسط نافش خالی کنم و بلافاصله به مقصد نامعلومی فرار کنم. ولی به درهایی که حتماً من منصرف شدم. هرچند که اگر این کار را هم می کردم باید به طرز سمیمانهی درک می شدم. من آن روز بیچاره شده بودم. گفتم هیچ جا رفته بودم بیرون. چطور؟ اسام گفت بعد از زوری اومدم در خونتون پیدا نکردم. در خونه ما؟ باست چی؟ هیچی اومدم پولو بهت برسونم. نبودی؟ مامانت گفت رفتی بیرون. همه چیز از کلم بیرون. دلم باز شد بازه باز حتی یک آن به سرم زد بابت آن لگدی که چند لحظه پیش قصد داشتم بهش بزنم ازش معذرت بخواهم به نشانه قدردانی از دو متری توی بغرش پریدم اما چون تمام روزم را رو به آن پدر بیهمه کسش به گن کشیده بود دیگر ماچ و موچش نکردم فقط گفتم دمت گرم پسر بازم به معرفت تو رد کن بیاد همرو نه بابا این همه پوله که دنبال خودم را نمیندازم این ور اون ور به 250000 تومان میگفت این همه پول غلط نکردم داش سرم مننت میگذاشت رفت بالا و به دقیقه نکشید که با پول برگشت یک بسته 2000 تومانی بود با یک پانزدی هنوز پولها رو گرس و قایم به دستم نداده گفت فقط به خونه گفتم دو ماهه عباس به پا حرفم دوتا نشه با دو ستو شدن حرف مشکلی نداشت پولش را میخواست گفتم خیال تقمه سرم بره قولم نمیره وامم نشه این کلا و اون کلا میکنم پولتو میدم اما بیشتر از آن حرفی نزدم ک چون اگر کسی از ته دل بخواهد پول کسی را پس بدهد قول و قسم بیخودی توی کار نمی آورد بیشتر آنهایی که سر شندر یقه جر میدهند دست آخر پولت می میخورن یک قلب آب هم روش بعد هم برای اینکه دیگر رنگ پولها را نبیند پیراهنم را بالا زدم و پولها را رو رو روی شکمم جاساس کردم و با کمربند خوب با کمش کردم گفتم آه, آه خیار تخت حسام تازه آنجا متوجه سر و ریخت روغنی من شد هیه لباسش رو ببین چیکار کرد تو با خودت کجا بودی مگه این سوالها ها رو خیلی تونو و مزه پرسید بیشتر مایل بود من را به حرف بکشد تا اینکه واقعا نگران شده باشد گفتم چیزی نیست؟ بالا یکی از بچه در اومدم شاخشونه کشیدیم دوام شد کی؟ همین بعد از آره همین غروبی با کی دعوات شد؟ خواستم بگویم با پدر بی پدرت اما گفتم با بچه های پشت خط برای بچه های پشت خط هم ما بچه های پشت خط حساب میشویم منظورم این است که در این مورد خط مثل گل است که پشت رو ندارد دور پرسید چند نفر بودن حالا زدی یا خوردی؟ من که اصلا دعوا کرده بودم ولی اگر هم کرده بودم خودش باید ملتفت میشد که سررا شکتم هیچ به آدم هایی که زدن نمیرفت گفتم راستیتش خوردم اما همه جو گفتم زدم. تو هم بگو زده توی مهر خوبیت نداره. دوزاریش نیفتاد. چه را سال پیچم میکرد. کیا بودن؟ با دار دسته گلام سارخ که سرشخت نشدی؟ غلام سارق کجا بود؟ اون الان شیش ماهی داره آبخونک میخوره. توه. از دم چک غلام رد میشدم که الان تیکه بزرگم گوشم بود. خودش خوب میدانست که دار دسته سارق هیچ کار نکنن آدم را شقه میکنن. کلی چاخام پاخن سرهم کردم و چون بالاخره باید بالاخواه یکی درآمده باشم بهش گفتم که بالا حسن اصلن کوچول درآمده توی آن سرما بیشتر از یک ساعت من رو یک رنگ پا نگه داشت من هم دمپایی پوشیده بودم و اینجوری خیلی دوام نمیآورم سوال های آخرش رو با آریا ن جواب دادم که خیلی کارگر افتاد یکی از چیزهایی که باعث می شود به این بابا حسام خله بگویند این است که وقتی دارد با آدم صحبت می کند یک مرتبه توی خانهوی چپد و در رو پشت سرش میبندم راست شکمم را گرفتم و رفتم. میخواستم تا آخر شب ول بچرخم که همه توی خانه خوابیده باشند. ولی فایدهای چیزی نمیکرد. آخرش که چی؟ چون آقا جونم آدمی نبود که با دیدن آن ریخت و قیافه از خیر گوشمالی دادم بگذرد. اگر میتوانستم جوری جیم بزنم که فقط با مامان شاخ به شاخ بشوم، نانم توی روغم بود. مامان معمولا سرادای قضیه رو با و نال و و دو تا ناله و نفرین کمجان هم میآورد. دو تا فرستادم و کلید را توی مغزی در چرخاندم. تا طبقه دوم همه چیز خیلی خوب پیش رفت. تلویزیون روشن بود و صدای اخبار ساعت نمیدانم چند می‌آمد. اما توی پله های سه طبقه درست جلوی در توالت مامان دوباره ظاهر شد. اگر لباس هم اتو کشیده و ترو تمیز بود، حتماً اول از من سوال کرد که تا آن موقع شب کدام گوری بودم. اما چون لباس هم جوری بود که شما بهتر از من می‌دانید، سرگوزاش به نهره زدند. نهره زد جیغ به سوامی نرسیده بود که گریخت. اگر این آخری رو هم به حساب بیاوریم این سومین باری بود که در یک روز مجبور به فرار می شدم. البته چیزی که هست چون این بار به این خاطر بود که مبادا کار خشونتباری از آقا جون سر بزند اسم این جور فرارها فرار به جلوست و از بیخ با مسئله فرارهای ظهر توفیر دارد. زیرا آسمان خدا ویلان ویلان برای خودم پرسه می زدم رفتم س چهارخ سیگار خریدم و همینطور رفتنی یکیش را دود کردم رفت هوا. سر صاحیه مقدم روبری نانوایی بربری که رسیدم دیدم نمیتوانم قدم از قدم بردارم. جان از هفت در رفته بود. همانجا برای خودم قنبرک زدم ولی شما اگر گذرتان این طرف ها افتاد اینجا قنبرک نزنید. هزاری هم که خسته بودید اینجا قنبرک نزنید. از نظر سوق سقجهشی بهتان میگویم اگر روزها تا قبل از بسته شدن نانبایی بربری آنجا بنشینید یعنی مثل یک آدم معمولی نان می خواهید. ولی هوا که تاریک می شود آنجا پاتوق مواد فروش های محل می شود در تمام کره زمین دمای هوا شبها ها سرتر از روز است و قلعه مرغی ما هم از همین قانون پیروی میکند و اگر کسی مایل باشد تمام شب را بیرون سپری کند تفش قندیل می بندد اما نشستنکی یک سیگار دیگر آتش زدم به خاطر لذتی که سیگار کشیدن در اینجور جور مواقع به آدم می دهد، احتمال معتاد شدن افراد خیلی بیشتر از وقت های دیگر است معلوم نیست چقدر از آدمهایی که الان معتادهای قهاریند در حال فرار معتاد شده باشند. اما حساب من به کل از آنها جدا بود. من در آن شب فقط پسرک تیپا خوردهی بودم که از خانه متواری شده و حتی جرأت نمی به خانه بر نگردن. ساعت که به مچم نبود. اما حدسی دور بر چهل دقیقه تا سروب همانجا نشسته بود. مغازا هم یکی یکی جلو پلاسشان را جمع کرده بودند فقط کریم و عزاز محل پشت پیشخان مغازش نشسته بود و طبق محمود قصد داشت تا آخرین ها مقاومت کند با اینکه شغلش هم جوری نیست که کار کردن تا بوغ سگ برایش نان بکند اما همیشه کرکره هایش را آخر همه پایین می کشد از آن طرف هم صبح کله سهر از سر نو توی مغازش می‌چوبت من جای او بودم حد صبحها کمی بیشتر میخوابیدم یا اینکه مغازه را از بیخ کل پزی میکردم و خلاص بقیه سیگارها را هم دود کردم دستم را توی جیبم کرده بودم و برای خودم سوت بلبلی میزدم. نه از سر خوشی، میزدم که فکرم آزاد شود. کریم هم دیگر داشت آهسته آهسته در مغازه را تخته می کرد که یک بارگی چراغ‌های گردان ماشین گشت را دیدم. امروز روز آمبولانس‌ها، آتش نشانی، اداره آب یا حتی همین ماشین‌های آشغالی هم از این چراغ‌های گردان بالای کله‌شان می‌بندند. ولی با مال پلیس خیلی فرق دارن. مال پلیس یک حیبت عجیبی دارد که انسانیت را از دور میخکوب می چشمشان که به مفتاد فوری شکارم کردند. خیالشان راحت بود که من یک عملی بی غیرت هم یکی از جناب سروان ها بی معطلی پیاده شد. من هم انگار نه انگار که ماشینشان را دیدم. چیزی که باید بدانید این است که وقتی به طور پلیس گشت افتادید و احتمالاً تنبانتان تمیز نبود نه خیلی بر خودتان را به کوچری چپ بزنید نه اینکه خیلی دست بشوید هرد به یک اندازه مشکوک است بعضی ها هم که ناشیگری میکنند و همان اول کاری به پلیسها ها خسته می میگویند که این یکی دیگر جدا افتضاح هست. غیر از یک بسته کبریت و توکلی هیچ چیز مهم دیگری همراه هم نبود دخل همه سیگار سیگارها را هم که تا دانه آخر آورده بودن. وقتی یاروش پیاده می شد آرام, آرام از جا جابارران شدم گفتم که خیلی هم نباید بیخیال بود، درست استاد رو می ایستاد و سرتو پام را ورانداز کرد حتی اگر مشکوک هم نباشند همیشه همین کار را گفت اینجا چیکار هیچی نشسته بودم نشستی؟ بله جا قهته مگه؟ نه سؤال و جواب را ببینید گفت واسه چی نشستی؟ بنال ببینم دم در خونهی رفیق امینا کارش داشتم هم ببینمش این موقع شب؟ آره به جده پس که رفیقت؟ دارم میادش. مثل بخت و نست توی صورتم براخ شده بود و با انگشت سببابه لپش را می خارند. در اصل نمی میخواست من را زهره ترک کنند. گفت که داره میاد ها؟ جا نزدم. شل می آمدم سفت میخوردم. گفتم آره آراز زهره مار؟ یکی از ایرات بزرگی که آجان های گشتی دارن این است که اکثر غریب به اتفاقشان اعصاب ندارن. پسر رحمت به این پلیس های راهنمایی و رانندگی گفت: کورفیقت <تصفيق> <تصفيق> لعنت خدا بر شیطان جواب یک سوال را چند دفعه باید داد؟ گفتم داره میاد. چی کار داری باهاش؟ کتاب ما بگیرم فردا امتحان داریم. چه امتحانی؟ ریاضی ریاضی آ فردا جمعه از مدرسه کجا بود؟ راست میگفت پسر روز جمعه مرده ها هم آزادن مدرسه کجا بود؟ اما قافیا رو نباختم. امتحان های مدرسه نیست که مال کلاسای کنکوره. پوسخن میزد. به نظرش یک جای کار میلنگید. گفت. با همین لباسا کلاس کنکور میری؟ اوه این یکی رو هم درست میگفت. هیچ حواسم به سر سراوزم نبود. جناب سرهنگ من خرج خونه میدم به خدا. بابام چند سال عمر شد به شما. خودم توی یه میکانیکی کار میکنم. لباسام هم همونجا روغنی می کدوم میکانیکی؟ یک اوس او سسمال حتی اسمش هم به گوشم نخورده بود همش یک اسمال توی محل داریم آنها ول می گردد که الاف نباشد مغازش کجاست؟ وسبنارده بقل جگرکی؟ گل کاشتم پسر این حرفها موقع شب به ذهن هیچ الواتی وسال نمیداد. به, نمی به خداوندی خدا در کمتر از یک ثانیه جفت جورش گردم کمی مکس کرد و گفت تو واکم ببینم با اینکه از درس و مدرسه براش حرف زده بودم اما عشقش کشید بو کند انگار دلش آشوب بود. ها کن؟ ها. محکم ها. ها. تا جایی که من میدانم اینها دهن آدم رو برای منظور دیگری بو میکنن اما به هر حالال دههنما بوی گند سیگار میداد و این برای کسی که ادعای درس و مدرسهش می شود کم مدرک جرمی نیست. خواستن فلنگ را ببندم ولی غیرتش را نداشتم. دست با خطا میکردم با هفتیر سوراخ سوراخ هم میکرد. چی کشیدی؟ یه نقص سیگار به خدا. خودم جلو جلو گردن گرفتم که شر نشود. که سیگار کشیدی؟ سیگار کشیدی یا سیگاری؟ سیگار به جدم؟ این رو گفته نگفته دست انداخت به جیبم. خیلی غبترها خیال میکردم شیوه کار پولیس ها است که اول به آدمیزاد مشکوم شوند. بعد بساتشان را پهن میکن اما در طول این سالها دستم آمده است که قضیه کاملا برعکس است. حالا این یارو هم دست بردار من نبود هرچه جیب داشتم گشت که رو را پیدا کرد ولی خدایش چیزی نگفت اما اگر خدای ناکرده خدای ناکرده خیلی اتفاقی دستش به پول های توی شکم هم میخورد واویلا بود بی و باید وسط خیابان مغور می آمدم. خیال میکرد با آن همه پول آمدم خودم را بسازم. و این البته تخصیل کاسب های محل است که یک سری از اماکن را جوری به کسافت میکشند که هیچ آدم آبروداری جرأت نکند آن حوالی پلاس بشود کارش که تمام شد گفت خیلی خوب اینجا ونسا سری کارتو بکن برو چش جناس حق الان که کتابیاره رفتم هاجی هاجی مکه من هیچ وقت ترتیب درست درجه این آجان ها را یاد نگرفتم همین الانش هم نمیدانم که زور سرگرد بیشتر است یا سروان یا اینکه مثلا گروهبان یک آدم مهمتری است یا گروهبان دو؟ منظورم این است که نباید گوله اعداد و ارقامشان را خورد. اینجور چیزها گاهی برعکسند. روی همین اصل هر جایی که کارم بهشان گیر بیفتد تک تکشان را از دم جناب سرهنگ صدا می کنم. هر چه باشه سرهنگ از صدفان و سرباز آشخور خیلی بالاتر است. آجان ها رفتند و چون هیچ کتابی در کار نبود من هم زدم به چاک. هرچه کردم هم شب رو بیرون از خانه صبح کنم نشد که نشد. دست اصفاد راستر به خانه برگشتم. خاموشی زده بودند، ولی حتم داشتم مامان یکی نخوابیده است. مگر از نگرانی من خوابش می برد. شک نداشتم اما باز نمیشد شد زیاد روش حساب کرد. لباس هم رو عوض کردم و پاورچین پاورچین ها رو بالا رفتم. به قدری تاریک بود که پام نمیدانم به چی گرفت که نزدیک بود کل محلق شدم. فارگوش وایستادم که ببینم ویز ویزی چیزی می یا نه دیدم نه دزدکی در اتاق را باز کردم و دمرو خیزیدم زیر لحاف خودم عجب روزی برای خودم ساخته بودم رستم کشیده شده بود حالا که با خودم تنها شدم میبینم که این گنترین پنشنبه آخر سال تمام عمرم بود یک چیز دیگر هنوز با خودم میگویم که آن شب مامان بیدار بود ولی هیچ بروم نیاورد